چقدر دراز باشد شب آشقان بیدل تو بیا که باز باشد در شب از اول صبح و اول زنمندگان در آستانه ی شب مبابرک میمون و همینطور بسیار پمیل گلدا در خدمت جناف سرهنگ جناف سرهنگ ما قرار دردکاب ایشون نمید مدت ها راوی یکی از معمولیت های غیر ممکن بشیم که دیگه خود تام کروز هم بگه با ای بلده ایش برزه یکی هست اما ما در ابتدار در میخوایم. ایردم نازه‌ی، چاق سلامتی، همین روی موتور با شما عزیزان کمی تا قسمتی در رابطه با این عملیات صحبت کنیم. جان سلام بگوشید. بله، بر. با سلام و ارزی اردام مبارکی، باز بگم که تهی چند روزه گذشته بلی؟ ما چندین مورد چک های داشتیم. سه مردم عزیزمون، بر گران فروشی که خب ما تصمیم گرفتیم با ایکیپ های ورزیده و آماده خودمون به شکلی خود، شربتی واردیم، علوشمو برای شناسایی یا دستگیری شخصی مغذر و خاطی ادام کنی از چی وگرلو فروختله آ از هم که برخی از فروشم ده هنگ شببه یهزار به نرخی از قرارکیی چه هزار500صد تو به مردمی می شریفهم میشه در صخته با به شیاسی پذیر فروخت به همین خاطر است که ماوارددی عملی یاد خدا یعنی یه گدونوری معمولی حدود پیش هزار تو من پای مردم ما پترن متفال بله در پااریت موارد. مشاال شد است که بیشترن فروخت در آقا چ این صاف های به سنگ حالا این تیم وزیده کجا که به چشم حالعلم میزاد نمیان یعنی من نمی بینمشون کجا می بین شما اگر چشم بثیررت تا بازکننی یا تو آین این سبز راست نگاه کنی میبیی برای میاد از کاشتی س اوه اویکی او غندی فک سرری خمونه که عقب داریم مییه بله. این بود تیم عزه ودی این شد محسص هستا با غینی رو ها به صورتی نام محسود در حالتی آماده باشن که در صورتی نیاد بلا فاصله بچه بچه سجازی دیگه غندی دیگه کلیشم نمیشه کن چی چی از با... کجا شروع میکنیم در ابتدا در ابتدا میریم همین بازاری هم. میبه فروشی سر چار را که بیشترین شکایات ازش شده میخواییم ببینیم علت از کجا من چه ها گرفته بله بله شده من دیگاه عزیز همونطور که متوجه شدی. قراری که در یک عملیات پولیشی موتوری منشه مشکل گرانی هندیونر و شناسایی و دستگیر کنید بابندید اکبر میکروفون تلا و جناف سرهنگ همراه کنید بگذ بریم سرهنگ بگذ بگذ بپا فقط بر خدایی دستاندازه بپلی ها سرهنگ بگی رو بگیم سرهنگ آواهی می این ماجرا ایگانون پرورشیه شما چی چی بوده؟ آره بهتر بود؟ خودت ما قربیایی هست، پیکو تکل داره. ببین بیبی... آواهی شما شکایت کرده، هندو نارو کیلو تو من به شوم چی چی بوده؟ نه. ما بیچاره. جناب ببین آواهی می این سرهنگ و اینجوری نگاه نکنا، غاتی کنی، آویزون نکنا. گفته باشی آقای عدی چی چی میگوش ما ما تون نیروی با هیچ کس برخورد خشن نداری. فقط برای ما اجزای قانون ماده آقا را اجزایی نکن دیگه واه تقصیر من ای میخوام کلاسی کاری طور ببرم نمیخوام شما در دهوندی باز جویده دخلت نکن گزارشه تا ببینیم خب میگفتی آقا جو همونجور که شما تقصیرکار مانیسین وقتی که کرای بارو گران میکنه ما مجبوریم بکشیم به نرخ کالا عجب پاسخی قانی کننده ای دادا من که مجاب شدم سر بیا یه بحث دیگه بریم درست سلا دادم من گفتم شما دخلت نکن آخه ما طرف این جوابیشو که نشاد پاسو کامیون دار چرا نرخش آگرون کرده؟ که دیگه وکیل اون نیستیم برای خودش بپرسیم ها همین کار هم میکنیم شما نمیخواد برای ما تعین تکلیف کنیم ها تاقه این کامیون داره کجاست آقا؟ والا سمت سرا خوابرانه آبال از آقا بی سهره به پا کتا از آقا بی سهره به مرگی, مرگی پا کتا چی؟ برای اقا بی سهره الان تویه یه غنگیه یه نه آقا میایی می و خورشاد دست بنمیزنی میشنی ترک ما ترتام میای دنبال ما. ای و ای و خویش می دونی گندی گذاشتیا مورگی فکوت. <تصفيق> منو چون داشت بزنی ایوان، ایوان، من که گفتم بیکسیرم. هفت نباشه دوباره. جناب سرایتور خدا تو همیان ولی اون که نباهم به آقا. شما با عنوان شاهد باز حضور داشته باشه هلی شما شاهد کامیون دارن رو دوباره بگو ببینم سرا خواهران گارو جختن ولی بگیمون بچه هم من کارهی نیستم به خدا شاهدی که دست من نمیزن جد بله میدونم بریم آقا بریم سرک نفرمه. بریم محترم در ادامه گزارش مغصر اصلی گرونی هندونه امکن به همراهی جواب ترهنگ در گاراج دختر هستیم دختر یکی جوابه؟ اخ اخ بخشیم همه ببینم یه نمیشته گاراج یختر هم یختر بله میبینم که جواب ترهنگ داره با گارنده یکی از کامیون هم پاک شده. به شدت گفت بوم نیزه بدین من نزدیکتر بشم ببینم که چی میگنم نه گردن ما نندازیم یعنی چی, چی این حرف شما پس گردنه کی بندازیم یعنی نه کار ما نیستیم آه. وقتی برای یه فیلتر هوا و فیلتر نوغم باید 150 صد, صد و مجبوری مرخ کرایه رو بکشیم اگه بخوایم بادمون رو فقط تنظیم کنیم میکنه از قرار چرخی 500 ست تومد شما همین بادو بگی برو بالا شما بهتره بری یه مکانیک میکانیکو بگیری که ما رو مجبور کرده نرخ کرایه‌را زیاد کنیم این تا چی هست کجا مکانیکه ابراهیم آقا طرفای شوش ببین نه ایرانندی ببین شما از دست قانون نمیتونی فرار کنی سریع همین چی نظر بده دیگه چی چی میگی عزیزی من شما دخال حد نکو صد بار گفتم خدا این دفعه بزنید زوق من شاکی بیشم خب برمزن با چی کار میکنی شما ایچی بایی چی هی با که انجام وزیفه دست و من بسته از قابی سر را به مرگی پا کتا غندی این آقای رانند را دست من بزن بنشونش ترکم آتارت به صورتی نامحسوس بیا به آدرسی که میگم. آقا رسیم مکانیک کجا بود گفتی؟ سوش به سمت تیزغولو مکانیکه برم آقا ها بله آقا ایشون رو منو دستم بزنم نه پس بنده گفته ظاهرا ماجرا به ادامه داره شما نگاه کنید در ادامه می‌گیری گزارش مقصدی از با ما همراه باشید شعر اومدی پیشم نخواستم من باشم تمام اولین لحظه ی دیدارا آخش قدر دلم تنگ پره